بسم الله الرحمن الرحيم أحوال الأمي حالات خاهران پدري بيان شد رسدين به حالات مادر دار ما دار چه حالات دار وأما للأمي فأحوال ثلاث مادر وأما مادر دار سه حالات دارت السودس یك حالات أول از ست، یک شیشون یعنی یک شیشون می راست و می بره ولی چه زمانی؟ مع الولدی و ولد الابنی و این سفل زمانی که میید فرزند داشته باشه یا فرزند پسر داشته باشه یا فرزند پسر پسر داشته باشه هرچی پایین تر برابد و این سفل هرچی پایین تر برابد پس اگر میت خودش فرزند داشت فرقی ندارد چه دختر چه پسر مادر میت یک میبره آنانی که شخصی فوت کرده یک پسر دارد و یک مادر خب اول می آیم مادر رو که یک هست جدا میکنیم باقی ماندر رو پسر میبره او معال اثنین من الاخواتی والاخواتی فصاعدن من ای جهت کانا این یک شیشمو یا همراه فرزند و فرزند پسر میبره او یا معال اثنینی من الاخوه یا دوتا برادر داشته باشه مید و الاخوات یا دوتا خواهر داشته باشه فصائدن یا بالاتر یا دیشتر بیشتر از دوتا. من ای جهت کانه هیچ فرقی نداره که برادران و خواهران می‌یت از چی سمتی باشن، برادر و خواهر پدری باشن، مادری ب... پدری و مادری باشن فرقی ندارد. چی بنی اعیان باشن، چی بنی علات باشن، چی بنی اخیاف، این مادر زمانی که میت برادر داشت دو تا بیشتر یا خواهر دو تا و بیشتر سهمیش کیشون است. مانند این که شخصی فوت میکند خب دو تا برادر دارد یک پسر دارد و مادر اینجا مادر یک شیشم مال رو میبرد، برادرای میت معیت ارسی نمیبرند چرا؟ چون خود میت پسری داره. ولی باوجود این که ارث نمیبرند سهمی مادر رو از یک سوم بردن به یک کیشم. پس؟ مادر یک شیشه میبرد زمانی که میت فرزند داشته باشد یا فرزند پسری داشته باشد پسری داشته باشد که اون پسر فرزند داشته باشد یا پسر پسری داشته باشد که اون فرزند داشته باشد فرقی نمیکنه در این حالت مادر یک شیشه میبرد و ثلث کلی حالت دوونوشو به میکنه و یک سوئومه کل مال رو میبرد عند عدم زمانی که نباشد یکی از اینایی که ذکر شد یعنی زمانی که میت فرزند نداشته باشه فرزند پسر نداشته باشه یعنی پسری نداشته باشه که اون پسر فرزند داشته باشه اونایی که ذکر شدند در این حالت یک سوه کل مالو میبره مانند این که شخصی فوت کرده است پدر دارد مادر دارد و برادر دارد در این حالت یک برادر البته چون اگه بیشتر باشنده و در اون حالت مادر یک شیشون میبره در این حالت مادر یک ثومه مالو میبره چرا؟ خاطر این که میت نفرزندی دارد و نه. خواهر و برادر بیشتر از دوتا دارد پس حالت اول یک شیشمش بیان شد حالت بعدی مادر سلسل کل هست یک سوم کل مال هست زمانی که اون افرادی که ذکر شدن رو نداشته باشد و سلسل مابقی سومین حالت مادر یک سوم مابقی مال هست بعد فرض احدی از بعد از این که یکی از دو زود، چوهر یا همسر فرض خود رو انتخاب کرده ببینید این البته فقط در دو مسئله مز... و دالکه فی مسئله تین و این حاله که مادر یک سوم مابقی رو میبره فقط در دو مسئله پیش میاد اون مسئله چی هست؟ زودون و عبوین زمانی که میت فوت کرده باشد پدر دا... یعنی پدر و مادر. پدر داشته باشد مادر داشته باشد و شوهر در این حالت مادر یک سوم کل مال رو نمیبره یعنی اول میاییم سهمیه شوهر رو جدا میکنیم هرچی باقی موند یک ثومه رو به مادر میدیم اینو میگن یک ثومه باقی مال در دو مسئله زمانی که میتی فوت کرده باشد پدر مادر شوهر داشته باشد و مسئله بعدی و زوجه و ابوین زمانی که میت فوت کرده باشد زن داشته باشد پدر و مادر در این دو مسئله یعنی زمانی که پدر و مادر میراث بر بودند به اضافه شوهر میت یا اینکه پدر و مادر میراث میراث بر بودند از زن میت در این دو مسئله مادر سوم بااپی رو میبرد. خب ئا چطور از شخصی فوت کرده است؟ شوهر دارد پدر دارد مادر دارد. شوهر یک دومه مالو میبرد. مادر یک سوم چرا یک سوم میبره ؟ چون م نه فرزندی داره و نه دو تا یا بیشتر خواهر رو برادر داردره. پس مادر اینجا یک سوم میبره. شوهر یک دوم میبره مادر. یک سومو رو میبره پدر که عصبه هست خب یک ثوم و یک دوم یک, سو... یک دوم و یک سوم، چه عبطه ای با هم دارن؟ دو ستا با هم تباییون دیگه میکنیم دو ستا میشه تا. اصل مسئله رو از 6 میگیریم یعنی مال رو 6 جا میکنیم 6 تقسیم بر سه چون یک و شیش، شیش تقسیم بر دو چون شوهر یک دوم میبره میشه سه از سیش قسمت مال رو برد شوهر میمونه سه تا دیگه از این ستا یک سوامو به مادر میدیم میشه یک تا میمونه دو تا دیگه چون شوهر برد یکی رو مادر دو تا دیگه باقی میمونن که اینها رو میبرد پدر زمانی که مسئله تو مسئله شوهر وجود داشته باشیم یا زمانی که شوهری مرده باشد مادری داشته باشد و پدری و همسری اینجا زوجه که یک چهارم میبرد مسئله رو میگیریم از یک چهارم مسئله رو میگیریم از چار سهمیه همسر یک چارون, یک چارون هست چار تقسیم بر چار یک یکی اینه مالو شارژ می میکنیم یک قسمتش میاد گیره زن، زوجه، همسرش میونه سه تا دیگه خب الان از این سه تا یک سوم مادر رو میدیم بعد از اینکه سهمیه شوهر رو دادیم سه تقسیم بر سه میشه یک مادر رو یکی گیر میاد دو تای دیگه باقی میمونن که پدر عصبه هست باقی ماندار رو میبره پس مادر سه حالت داره در میراث یا یک رو میبره زمان که میت فرزند داشته باشه یا فرزندان پسر داشته باشه و هرچه پایین تر. یا اینکه دو تا برادر داشته باشه میت یا دو تا خواهر داشته باشه یا از دو تا بیشتر باشند از هر سمتی باشن فرقی نداره. حالت سوم مادر حالت دوم مادری است که یک سوم کل ما رو میبره. مثال زدیم. مثلا مثال دیگه میزرییم شخصی فوت کرده است. مادر دارد و یک برادر دارد. مادر و یک سوم کل ما رو میدیم باقی مانده رو میدیم به برادر. حالت سوم مادر یک سووب باقی مال بود. این فقط در دو مسئله وجود دارد. که این دو مسئله در میراست مشهورند به مسئله غرراوین یا عمریتین غرراوین به خاطر شهرکشون غره سفیدی رو میگن درخشندگی رو میگن اغر. ستارگان درخشان لذا چون شهرت این دو مسئله به مانند ستارهگان درخشان هستند این مسئله این دو مسئله مشهور به غرامن هستند و همچنین امریتن تون در زمان فاروق رضی الله عنه ها پیش اومدند و مسئله رو چنین چنین حل کرد البته با فتوای بزرگان دیگری همچون علی و ابن مسعود رضی الله عنهما و جمهور فقهای اگر ولوکان مکان ابی ولوکان مکانبی اگر به جای پدر پدر بزرگ باشه یعنی مثلا شخصی فوت کرده پدر بزرگی داره مادر و زن داره یا شوهر داره اینجا آیه باز هم مادر رو یک از یک سوم باقی مانده ارث میبره با زمانی که پدر نیست سر جای پدر پدر بزرگ یا نه یک سووم کل مال رو میبره یا نه یک سووم باقی رو میبره خب ببینیم چی میگه میگه والو مکان ال اگر به جای پدر پدر بزرگ باشه فل الام سلسو جمعی المال اینجا مادر یک سرو کل مالو میبره الا عند ابي يوسف مگر جر امام ابو يوسف رحمه الله فان لها ثلث الباقي امام ابو يوسف میگه که با وجود پدر بزرگ هم زمان که پدر نباشه بجاش پدر بزرگ باشه یک سرو باقی رو میبره ولی جمهور فقها همین رو میگن که فقط زمانی که پدر در مسئله عمریت وجود داشته باشه مادر یک ثومه باقی رو میبره. با وجود پدر بزرگ یک ثومه کل مال میبره. فقه های دیگر مذاهب دیگه هم نظریشون همین هست و قول صحیح و راجع هم همین هست. یعنی اگر در مسئلهی شخص فوت کرد، همسر داشت، مادر داشت به اضافه پدر بزرگ، اینجا دیگه مادر یک سوم باقی رو نمیبره بلکه یک ثومه کل مالو رو میبره از من ابتدا قبل از این که سهمیه یکی از دو همسر خارج بشه قبل از این که خارج بشه سهمیه مادر داده میشه یعنی چنین نیست که اول سهمیه یکی از دو همسر رو بدیم بعدش بیاییم سهمیه مادر رو بدیم نه با وجود پدر بزرگ چنین نیست این بود از حالات مادر که س حالت داشت